امام مجتبا علیه السلام وقتی از دنیا رفتن تا آشورا 11 سال فاصله بوده قاسم ابن الحسن 13 ساله پس زمان شهادت باباشون دو سالشون بوده یعنی از دو سالگی تا 13 سالگی یعنی این دوران عمر تا اون یادش میاد خودشو رو زانوی امو دیده که امو امام حسین علیه السلام. اصولاً بچه ها معمولاً پسر بچه ها. دختر بچه ها ممکنه یه مقدار با عمه، با خاله بیشتر انس بگیرن پسر بچه ها معمولاً با عمو و دایی خوب انسی دارن به خصوص اگر یتیم باشن بچه یتیم معمولاً به عموها که میرسن به یاد باباشون بیشتر میفتن یا داییها محبتی به بچه یتیم ها میکنن که یه مقداری خلع روحیشون نسبت به پدر که از دست دادن پر کنه این طبیعیه حالا اگر امو یادایی خیلی مهربان و عاطفی و پرمحبت باشه این دیگه خیلی اون امو کی امام حسین فرزند که جناب قاسم ابن الحسن از سلاله پیغمبر اینم خودش یه حسابی داره لذا رابطه عاطفی بین قاسم ابن الحسن و امام حسین علیه السلام یه رابطه بسیار خواستیه بسیار خاصیه در کتب مقاتل اومده وقتی که قاسم ابن حسن لباس رزب رو پوشید هنوز اون رشد لازم جسمی رم نکرده بود سیزده سالش بود عبا یا اون ردایی که داشت یه مقدار بلند بود که به کفشش حتی گیر میکرد به این حالت حتی اینم نوشتن کف کفشش تو قسمت چپ که این نعلینو نگه داره بریده شده بود که این گاهی از پاشم در می اومد با این حالت یه وقت اومد جلو خیمه امو امو دید که قاسم لباس رزم پوشیده یعنی قبل از اینکه امو به اجازه میدید با لباس اومد که عمو ببینه حالا میفرمایید برام میگه به محضی که امام حسین قاسم رو با لباس رزم دید دست کرد تو گردنش این امو گریه کردن که در مقاتل داره حتی قشي لحوماتا هر دو تا غشت کردن این چیه قضیه مثلا شما حالا من که نمیفهمم در حد فهم کودکانه خودم میخوام یه اشاره بکنم در این حد بنده که میفهمم بگم یه معلم مثلا امیدها داره نسبت به یه شاگردش معلمی که اهل درده معلمی که دلسوخته و عاشق تربیت افراده وقتی پنجاه تا سی تا 60 تا شاگرد داره یه شاگرد رو خیلی لایق و مستعد میدونه، امیدها نسبت به این شاگرد داره، میبینه خوشحال میشه، نگاهش میکنه اصرار احساس سرور میکنه دو روز نبینه احساس تنهایی غربت و غم میکنه میگه این ان کارها خواهد کرد. امام حسین امیدها از نسل امام مجتبا و جناب قاسم ابن الحسن داره که اینها باید تو جامعه گلستان ها ایجاد کنن ولی کار به جایی رسیده که این گنچه ای که هنوز کاملا شکفته نشده باید همون جا خفه بشه لذا امام رنجش بر اساس اینه که ببینید جامعه ما کارش به کجا رسیده میخوان این گنچه که بناست اتر ارزنده رو به فضا به فراکنن الان در همون قنچه خفشون بکنن لذا انقدر امام علیه السلام گریست تا بعد از اینکه به هوش آمدن قاسم ابن الحسن به امام حسین ارز کرد اموجان جان اجازه میدید منم برم بیدان اول امام حسین عرض کرد که اموجان میشه شما نرید گفت اموجان شما رو به بابام امام مجتبی هم میده. وقتی قسم به بابا امام مجتبا داد امام حسین فرمود اموجان تا تو هم برو امام حسن اومد بیرون میدان رجزی خون اون مطالبی که میدانید جنگ در گرفت یه ادهی به طرف این کودک آمدن حالا نوجوان کودک سیزده ساله شمشیری ابتدا به فرق قاسم ابن الحسن زدن بله فرق علی رو شمشیر میزنن اینا با آل علی با مغز و سر آل علی اینا مخالفن اینم از آل علیه کما اینکه به فرق علی اکبر هم زدن کما اینکه گرز رو به فرق ابل فضل هم زدن کما اینکه سر امام حسین رو هم بالای نی کردن و حاکذا. شمشیر بر فرق قاسم ابن الحسن زدن فرق شکافته شد خون همه چهره رو گرفت قاسم به زمین افتاد فریاد زد اموجان جان مرا دریا میگن وقتی صدای استقاسه قاسم به گوش امام حسین رسید تعبیری که در کتب مقاتل داره مثل اقابی که برای سید میخواد پرواز کنه حمله بر بشه با چه سرعت بیشتر امام حسین به سوی میدان آمد قاتل قاسم که شمشیر رو به فرق جناب قاسم وارد کرده بود داشت رد میشد امام حسین به او حمله کرد شمشیری زد او دستش آورد بالا که حائل کنه شمشیر امام حسین به دستش گرفت دست او بریده شد نعره زد ادشمن دید امام حسین دست قاتل قاسم رو بریده یه باره گروهی با اسمها حجوب آوردند اسمهایی که نهلهای تازه داشتند یه وخت صدای این نوجوان سیزده ساله زیر سم اسبها ها بلند شد امو جان دگر مقاتله نکن همه استخونه های من هم خورد شد فقط میخوام یه بار دیگه امو جان تو را ببینم یه وقت امام حسین این لشکریان رو جدا کرد اومد بالا سر قاسم سر قاسم در بغل گرفت دید قاسم جان به جان آفرین تسلیم کرده میگن اونقدر امام حسین همون جا گریه کرد و فرمود چقدر برای من امو سخته که توی برادر زاده از من کمک بخوای و من نتونم کمکت بکنم بعد بغل کرد قاسم رو سینه قاسم رو به سینه چسبون به این حالت بیاره به سمت خیمه ها یه وقت پای قاسم به زمین کشیده میشد من نمیدونم این یک سوال برای من قد امام حسین بلند بوده قاسم سیزده ساله وقتی سینه قاسم به سینه امام حسین چسبیده ها چرا به زمین کشیده می شود تصور من اینه که قد ما حسین خمیده شده بوده شاید دلار دلار را افتاده از این مصیبت این نوجوان پاک آل رسول لذا اومد تو خیمه بدن قاسم رو تو اون دارالحرب گذاشت عرض ادبی به امام مجتبا بکنیم این یک پسر امام مجتباست قاسم ابن الحسن جوونای عزیز نوجوونها شما را به جان قاسم ابن الحسن امشب قرار داد امضا کنید با آل علی پاک داماد باشید، آزاده زندگی کنید یه پسر دیگری هم امام حسن داره یازده ساله است به نام عبدالله ابن حسن اونم آشورا کربلا شهید شد که اصلا پدر یادش نیست که از بچگی بابا ندیده تو دامن امام حسین بزرگ شده او هم شهید شد کی وقتی بدن امام حسین تو گودال قتلگاه بود زینب الله ها دامن خیمه رو کنار زد دشمن امام حسین رو محاصره کرده بود این بچه از در خیمه آهسته آهسته داشت نگاه کرد. دید شمشیرا میره بالا میاد پایین حلقه کردن دایید به طرف میدان امام حسین از لابلای این جمعیت دید که عبدالله داره میاد فریاد زد خواهرم زینب بچه رو بگیر اما بچه در رفت از لابلای جمعیت خودشو رسون انداخ رو بدن امام حسین گفت نمی گذارم امویم رو کنی. شمشیری بالا رفت این بچه 11 یازده ساله دستش رو آورد بالا شمشیر دستش رو غط کرد بیهوش رو سینه امو افتاد امو فرمود برادر زاده الان مهمان باباد امام مجتبا خواهیش